بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني قولي. بندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم خوشحال هستم که در خدمت شما مؤمنین موحد قرار دارم و برنامه جدیدی از برنامه‌های عقیده در قرآن و سنت خدمتتان تقدیم میدارم دوستان عزیز، دری برنامه درباره منزلت عقیده قرآن و سنت و مصادر عقیده اسلامی عقیده توحید صحبت خواهد کردیم وقتی انسان درباره مقام و منزلت یک علم صحبت میکنه علما میگن وقتی درباره یک علم صحبت میکنیم یکی عالم است و یکی معلوم است و علم است. این علم برای ما چه معلومات میده؟ موضوعش چی است؟ مطابق اینه موضوع ما درباره منزلت و عزت از علم بحث میکنیم. و میگیم که این علم خاطر ازینی ایناله علم عقیده علم است که درباره ذات، صفات، موزوش، ذات، ذات الله جل, جل و صفات الله جل و عبادت الله جل وحو قانون الله جل جله کلام الله جل وحو مسائلی که کلش تعلق میگیره با الله جل وحو علم سیره تعلق میگیره به شخصیت و شناخت یک پیغمبر علم ساینس تعلق میگیره به شناخت فیزیک، کیمیا و بیالوجی هر علم با اعتبار امون معلومش او ارزش خود داره پس موضوع عقیده چون خالق ای جهان است از این خاطر علم عقیده بهترین و عالیترین و بلندترین و علم که منزلت از او عالیتر از منزلت تمام علوم است چرا؟ به خاطر این که د ای علم کی معرفی میکنی؟ ذات خالقه خالق جهانه خالق هستی رو صفات از اورا بحث میکنی اسمایی از اورا بحث میکنی عبادت از اورا بحث میکنی قانون از اورا بحث میکنی حکم از اورا بحث میکنی و بالاخره مردمه و پرستش ذات یگانه دعوت میکنی که یقینه را فهمید والله هر کسی که عقیده توحیده به شکل درستش بفهمه و اطمان موحد است و با غیر از عبادت الله جل جلاله کسی کس دیگه رجوع نمیکنه پس از این خاطر ی علم است که ارتباط مخلوق با خالقش است از این خاطر منزلت از این اهل به این خاطر بسیار عالی و بلند است شرف و عظمت یک علم تعلق میگره نقطه دومی که شرف و عظمت یک علم تعلق میگره به چی؟ به ضرورت و حاجت انسان به معلم اینال یک انسان به چی زیاد نیاز داره؟ باور بکنین از آب کرده، از خوراک کرده، از صحت کرده از هر چیزی که در زندگی برای انسان بسیار با ارزش معلوم میشه از همه از او کرده عقیده اسلامی برای انسان مهمتر است خاطر که اگر م گلاس آب است یا گلاس چای هست پیلی چای هست اگر ما ایره می نوشم درست است ما به این نیاز دارم تشنگی من رفع می کنم اگر امی آب و چای نباشم، من از دنیا میرم. لکن اگر در دنیا وفات کردم آخرتم هست اونجا زندگی دیگه هست اما اگر العیاظ بالله ی کس عقیده خراب داشته باشه او حلاکتش صد فیصد است بدبختیش در آخرت صد فیصد است الله جله جل بسیاری از ها را بخشه لکن الله جله جل نمیبخشه کسی که بر از شرک آورده باشه پس اهمیت عقیده توحید اهمیت عقیده اسلامی نظر به چی است که ما, ما انسان ها به او بسیار نیاز داریم و حاجت ما بسیار زیاد است از این خاطر علم عقیده اسلامی دارای ات یک مقام و منزلت است عظمت یک علم و منزلت یک علم نقطه 3 است که منزلت یک علم یا عظمت او برای انسان چه وقت بر انسان ثابت میشه که از دیدگاه منفعتش چی منفعتی بر ما داده؟ ایناله وقتی که هر علم بخوانی او یک منفعت خاص خود داره اما علم که سعادت دنیا و آخرت بر انسان بار میره این علم عقیده اسلامی هست از این خاطر منفعت از بسیار زیاد است. چرا یک کسی یک علم رو یاد میگیره در دنیا بدردش دردش میخوره اما در آخرت به دردش نمی خوره. یک نفر تجارت میکنه در دنیا صاحب مال میشه. اما امی مال عزی و امی طریقی پیدا کردن مال ازی در دنیا به درد میخوره. لیکن نمیتونه این مال سعادت آخرت ازی هم کمایی بکنه. لیکن عقیده اسلامی منفعتش هم در دنیا هست و هم در آخرت هست. شما ببینین عقیده اسلامی از نگاه صحت انسان که عقیده خوب داره و مطابق احکام اسلام زندگی میکنه ای از همه مردم ها که در صحت است. ما مردم مثلا در افغانستان بسیار از نگاه اقتصادی خاطر که دشمن های اسلام سرما جنگ های رنگ و رنگ تحمیل کردن بسیار مشکلات اقتصادی داریم. لکن الحمدلله صحت ما از صحت بسیار کسایی که دارای بسیار امکانات مادی هست خوبتر است خطرناکترین امراض مثلا HIV ای که به میلیون ها میلیون انسان از بین برده و امروز میلیون ها انسان مبتلا هستند و منتظر نابودی و هلاکت هستند که کشورها را تهدید میکنه مسلمانان چرا از این مرض الله اونا را نگاه کرده به خاطر که اینا با عقیده قوی که به الله جل جلو دارن با شناخت وحدانیت الله جلاله احکام ازوره در غیاب هر پلیس و در غیاب هر سارانوال و در غیاب هر محکمه می که مالک رقیبی که 24 سات مارا مراقبت میکنه الله جلاله از این خاطر از بسیاری گناه ها خود حفظ میکنن پس انسان مسلمان بسیار حاجت داره و عقیده خاطر صحت خود امروز بسیاری کسایی هستند که ایمان و عقیده درست ندارند، روابط خوبی در فامیل ندارند، بچه مسلمان متدین، یک زن فرانسوی یک بچه خدا نصیحت میکند که بچه مسلمان شو، برش گفتن که چرا؟ چرا مسلمان شو؟ تو خودت نصرانی هستی، کریستیان هستی، تو چطور به دعوت میکنی بیا مسلمان شو؟ میگه به خاطر از اینکه فرزندی که با ایمان باشه، او بر والدین خود تا آخرین لحظه عمر وفادار است و در خدمت از هست. قرآن برش میگه که ولا تقل تَقُلْ لَهُمَا اف بر والدین تان نگوین حرکت های منفی خو ابدا هیچ حرکت منفی را انجام نتین از این خاطر از نگاه فامیلی عقیده توحید قدر تاثیر داره در استحکام روابط فامیلی و روابط اجتماعی از نگاه سایکولوژی، و علمای روانشناسی را رو وقتی که ببینید پرسانشان بکند اونها میگه قدر که انسان عقیدش قوی باشه و هرقدر به خالق خود ارتباط قوی داشته باشه به مو اندازه بر از آرامش روحی و آرامش روانی زیاد بر از ایجاد میشه سبحان الله صحت روانی صحت بدنی صحت خانوادگی امنیت و آرامش قدر در یک تعمید مثلا اگر 100 نفر متدین باشه انسان هیچ وقت احساس غم نمی کنه خاطر که او کسی که از الله جل جل در درسه هیچ وقت بالای کسی تجاوز نمیکنه کنه و حق کسی را زایی نمی کنه و کسی را برای بدی که از کار نمی کنه. اما اگر یک بدین در یک جایی بود در اونجا نارامی هست اکثر نارامی های دنیا بخاطر چی است بخاطر خاطر اینکه اکثر های غیر معتقد و بیدین و بیمان بی هستند حتی در کشورهای اسلامی کسانی که امی بدبختی ها را ایجاد میکنن و سبب از این که چور بکنند، چپاول بکنند، مال مردم بخورند، رشوت بخورند، به طرف ناموس مردم به نظر سال کنن، تمام روز با ساز و موسیقی و رقص ایا روی بیارن، همیشه کارای شیطانی بکنن، علتش ایست که این ها عقیدیشون بسیار ضعیف است. از ای خاطر اینا سبب بدبختی در جامعه میشن. بناان عقیده اسلامی که بر انسان سعادت بار میاره از نگاه صحت بر انسان صحت میته از نگاه روان روان انسان آرام میسازه از نگاه جامعه و اجتماع امنیت ایجاد میکنه دوستی را ایجاد میکنه خوبات و برادری رو ایجاد میکنه تمدن و پیشرفت و ترقی ایجاد میکنه از این خاطر انسان به این عقیده بسیار نیاز داره و منفعت از این بسیار زیاد است به اساس ای این منفیت ازی ای خاطر عقیده اسلامی بسیار خوب است عظمت و منزلت عقیده اسلامی ده ای است که عقیده اسلامی بر انسان خوشبختی های دنیا و آخرت بار میره انسان در دنیا خوشبخت باشه چرا خوشبخت است؟ بخاطر ازی که شاید ما هیچ چیز نداشته باشم و شاید ما بسیار در زندگی خود غریب و بیچاره و ناتوان باشم لکن الحمدلله که الله جل جلوه بر ما عقیده خوب داده ولو که هیچ چیز نداریم با وجود ازی همه چیز داریم تمام لشکر الله جل جلوه امرائی ماست در قبر وقتی که الله با امرائی ما هست ما راحت استیم در روز آخرت وقتی که الله به امرائی ما هست ما راحت استیم اگر یک قطر آب هم نوشیم، به نام الله بسم الله گفته می و همی هم بر ما راحتی ایجاد میکنه استراحت میکنیم به نام الله برمیخیسیم به نام الله زندگی میکنیم به نام الله از ای خاطر عقیده اسلامی بر انسان استغنامی میبخشه و یه بزرگترین سرمایه هست انسان با ایمان آنقدر احساس استغنا میکنه که مغنی هستم از تمام مردم کرده هیچ وقت خوده ذلیل نمیسازه هیچ وقت خود غلام نمیسازه اگر سجده میکنه فقط بر رب العالمین رکوع میکنه فقط بر رب العالمین دعا میکنه دست خدا فقط به بارگاه رب العالمین بلند میکنه سجده میکنه فقط بر رب العالمین سبحان ربی الاعلی عزی خاطر المعقدی اسلامی برای انسان تمام خوشبختی ها را به بار می رزی خاطر ای علم منزلت بسیار زیاد داره کسایی که غلام هستند چرا غلام هستند؟ کسایی که گای غلام روس میشن گای غلام امریکا میشن گای نوکری ازورا میکنن گای می میکنن وطن خدا دین خدا عقیده خدا چرا علتش چی است علتش این است که اینها عقیده درست ندارند ارتباطشان با خالقشان ضعیف است و از این خاطر همیشه برشان خمم است اگر میمران از می میترسن یا سبحان الله که میگه نام مرگ نگه هیچ وقت میگه از قبر گپ نزن. هیچ وقت از مرگ گپ نزن. همیشه از زندگی و لذت ها گپ بزن. برای از اینا بسیار خطرناک است. از محاسبه گپ نزن. از دفتر اعمال گپ نزن. از ای که در روز آخرت ما چه حالتی از میبینی گپ نزن. فقط از خوشی و از لذت فقط گپ بزن. و رسول الله شما زیادتر حاضم لذات چیز رو یاد کنید که لذتهای شما را بشکنانه و او مرگ است پس انسان موحد مرگ برش راحت است زندگی هم برش راحت است برادر هم برش راحت است وقتی که برادر با ایمان داشته باشی دوست با ایمان داشته باشی او هم بر تو راحت است بخاطر از می دوست که تو رابطه ایش رابطه معنوی هست ترا دوست داره صادقانه خانمت هم برت راحت است به خاطر از او یک زن دیندار است و زن دیندار هیچ وقت به شوهر خود خیانت نمی‌کند دخترت هم برت راحت است به خاطر که اولادت که اولاد دیندار سبب افتخار والدینم در دنیا و هم در آخرت میباشند از جمله باقیات صالحات است مالت هم برت راحت است به خاطر که وقتی که دیندار هستی و عقیده خوب داری مالت برای رضای الله جل جلو استعمال میکنی و مثبت استعمال میکنی و فی اموال حق و والمحروم در اموالشان حق برای سوال کننده برای مسکین برای بیچاره برای محرومین از این خاطر کلش برای سعادت است و کسی که عقیده درست نداره چی بدبختی داره مشکلشی این است که این بیچاره دخترش هم برایش هم از دیگر روز وقت برای خود یک عاشق پیدا کرده که زور زو گای دای اج جای بشی کای دگه اج جای بشی او بالاخره فرار بکو پس دخانه از یا غم است چی که پس هل دختر فلانی گریخت چرا گریخت به خاطر کی بدین است اگر دین می داشت و عقیده درست می داشت و اولاد خود مطابق قرآن و سنت تربیه میکرد ان شاء الله تعالی اولادش اولاد خوب میبود ولی متاسفانه هیچ چیزی به میشکل از نگاه خانمش برایش غم است خانم گرفته بدین است خانم بدین ای از دروازه میبره او سبب چه برامد یک چیز میگه او چیز دیگه میگه لباس لباسای عجیب غریب لباسای اوندوها لباسای خارجی ها به خاطر امو خانمش هم بر از این غم است 24 ساعت جنگ و جنجال و داوا هست اما اگر عقیده درست و ایمان قوی داشته باشن آرامش در خانواده از اینا سر تا سر میگیرن از این خاطر اهمیت عقیده است که خوشبختی و نیکی ها و خوبی های زندگی برای انسان جلب میکنه و هر نیمت هر موجودی که در زندگی هست برای انسان معتقد او یک نیمت است یک خوشبختی است از داشتن دوست خود لذت میبره از داشتن همسر لذت میبره از زندگی لذت میبره از آرامش لذت میبره حتی از مرگ و از شهادت لذت میبره از کلش اما لحظه که میمره شهید میشه از امون هم لذت میبره نماز که میخوانه امون نماز خوان چون ملاقات با رب جلال سبحان الله سبحانك اللهم و بحمدك. در مقابل الله جل جلو استاد میشه او هم برازی راحت است او هم یک نیمت است براش نماز خواندن و طاعت و عبادت تدیق احکام اسلام ای هم براش یک نیمت بزرگ است تدبیق سیاست اسلامی ای هم برش یک نیمت و لذت است از این خاطر ببینیم که چقدر منزلت داره عقیده اسلامی منزلت های بسیار خوب عقیده اسلامی است که عقیده راسخ سبب قبولی تمام اعمال نیکی یک انسان مسلمان میکرد آیت شریف است که لناشرکت لهئن اشرکته لَا یحبطن عملک اگر شرک آوردی اعمال تو کاملا از بین میره پس انسان کافر که هرقدر نیکی بکنه چون عقیدهی به آخرت نداره و یک روز هم نگفته که یا الله برای ما پاداش از بده پس تمام اعمال ازی هیچ پاداش اعمال نیک خدا در دنیا حاصل میکنه اما آخرت هیچ چیز نمیداشته باشه انسان مشرک تمام روز زامت میکشه و تمام روز لیکن پاداش از و قبول نمیشه از مشرک کسی که در عبادت الله کسر شریک ساخته باشه آیا از او عملش قبول میشه؟ او کسی که از غیر الله و به غیر الله قلب خدا ببنده و دعا به بارگاه غیر الله بکنه ابدا او بیچاره هیچ قبول نمیشه زامت زیاد میکشه زیاد سرگردان می باشه زیاد فکر میکنه که من بسیار با تقوا هستم ولی وقتی که عقیده ضعیف داشت عقیدیش خراب بود و عقیدش مخالف قرآن و احاديث صحي رسول الله صلى الله عليه وسلم هیچ عملش بدردشون نمیخوره و از این خاطر وقتی که ما میخوایم که عقیده بسیار خوب داشته باشیم وقتی که میخوایم که عمل ما قبول شوه در نماز خواندیم امید درکات نماز ما با شکل بسیار خوب قبول شوه و الله جل جلاله در مقابلش بر ما پاداش بده ده ایسرت ما با عقیده اسلامی امی عمل ما یعنی برادر عزیز خلاصش ای که دوسیه اعمال نیک برای قبول شدن برای کی باز میشه؟ برای کسی باز میشه و نوشته میشه و باز میشه که او عقیده توحید اسلامی داشته باشه یک تا پرست واقعی باشه اما اگر یک نفر ولو که امی انسان به هزارها رکات نماز نفل بخونن لکن عقیده توحید نداشته باشه، تمام اعمال عظیم در دفتر سیای اعمالش نوشته میشه و بی‌ثواب برش گناه نوشته میشه او ذکر میکنه ذکرش به گناه حساب میشه او عبادت میکنه عبادتش به گناه برش نوشته میشه چرا به خاطر که عقیده ازی مطابق قرآن و مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه و نیست ازی ای خاطر این از منزلت عقیده اسلامی که هر عمل انسانه سبب قبولیش میشه یعنی هر عمل که در پالوش عقیده سی و پاک بود مورد قبول الله جلال است. هر عملی که با عقیده خراب بود ولو که هر قدر هزارا و میلیونها ها نماز باشه چلی و به ارزش است. نقطه آخری که مسادر عقیده اسلامی چیست؟ بردرهای مخترم خواهرای عزیز عقیده اسلامی دو مزدر داره مزدر رییسی و اصلی که باید از و عقیده خود مسلمان باید بگیره أول كتاب الله حس، قرآن أزيم وشان باري ما در باري عقيدة إسلامية جل قفتا است الله جلالهما يعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقع اين جزء فإما يأتينكم وقت كي بيعي شما مني از جانب من هدى هدايتي فمن طبع بس هر كاسي كي مطابعت کرت هدایت های منه فلا یظلو پسی گمراه ولا یشقی و شقی نمیشه پس کی گمراه میشه و کی شقی میشه کسی که از هدایت الهی که در قرآن است از او سرباز بزنه پس اصل عقیده توحید و عقیده راستین در قرآن عزی مشان است و دومش در سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم سننت صحیحه احادیس صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله ما حدیث گفته باشن که بلی این حدیث حدیث زیاس اما حدیث ضعیف حدیث موضوع حدیث که سند نداره و هر کتابی که پیدا شد نوشته بکنه این سبب نجات انسان نمیشه الله جل جلاله میگه هو الذی الله ذات اس که بعث في الاميين رسولا منهم که در بین امیه ها رسول فرستاده من هم از بین خودشان یطلو علیه هم که تلاوات میکنه برشان آیات شرا و یو و اینا را تسکیه میکنه توسط چی؟ توسط قرآن همی زمان شان سایی که یطلو علیه هم تلاوات میکنه آیات قرآن امی آیات قرآن اینا را چی میکنه؟ و یو زکیه هم اینا را تسکیه میکنه و یعلمهم الكتاب والحکم امی پیغمبر برسانه تلاوات م و امي پیغمبر اینا کتاب و حکمت برشان نشان میدن کتاب قرآن است و حکمت سنت و احادیث صحیح رسول الله ص و این کانو من قبل لفي ضلال مبين اگر چه اینا در گمراهی بودند پس مصدر کسی که میخواهیم که ما واحد باشیم مصدر عقیده ما را باید بشناسیم که او چی هست اول قرآن هستی مشان است باید از او بگیریم و دوم احادیث صحیح رسول الله ص نه احادیث دروغی و ساختگی و قصه های خیال بافی بلکه احادیث صحیح که علمای حدیث را حدیث صحیح گفتن و و وقناعت کردن و تایید کردن. الله جلاله جلاله بر ما شما توفیق نصیب بکنه که با فهمیدن منزلت و عظمت عقیده قرآن و سنت و به عقیده خوب چنگ بزنیم و همچنان الله جلاله جلاله بر ما توفیق بته که عقیده خود از قرآن بگیریم و عقیده خدا از احادیث صحیح رسول الله هم بگیریم از کتابه لحظه با ما در برنامه ما بودیم الله جل جله اجر برتان نصیب بکنه و در جمله علما و در جمله متعلمین و طلاب عقیده توحید همه ما شما را در روز قیامت حشر بکنه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته